گوگرانی خوشوییست سلاوتن لی به خوشحالین لابشی هشتای خوند نوی کتب چشتیم جوری هجاریم کریانی حتی نوالای ایوا فرمون لگلمان حجار مکلیانی لیرانوی بس راحت کنی جانی خود داشت سر و کسانی که لکردستانی ایران و هات بونو خبرت اندکردو دلی راجک اورا احمدی بر میرزامدی کل دست و دایره جمعتی معین بو و تو قراری اندو بچینو ایرانو شورش حل گیرسینین بلامن رام کردو دقلی ناتم و مام ممعلی عجم بنک بجی ماو هشتانشوا خبرم بو مام ممعلی نرد که اگر ناچه با ایران بابیت لایمن، هاته تا آخری شورش، لیک حال نبراینو بنکم تسلیمی اودا کرد، وک گل پیاراده گیشت، بیستموه که دوی اویی، نا همید بوبون، بیستویان بو خویان لی ایران کاریک بکن، حمدامین سیراجی که لهموان دلگرمتر بوا کدبی هر بچین، شوک لدولار راقو رویشتونو حمدامین تاسر سنور دگلین بوا، گتوی برا وا باشه من بچم دگل دولتی عراق قصاب که موچک و اسپاب بور بوور بگرم خویلیت زیونه و خویگیاندو تا بغدایو ما تیحل گرتوه پیشمرگ ایرانیکان کتونه چیاو توشی شرو بکشت چون حتونه سیراجی هیچ خبری نبوه و بیسرو شوه نه جایستاش تا باسی شهید مون اسماعیل شریف ملا آواره ده بیستم گرجیش چروچاوی پرلافیالو فرجی سیراجیم دیتو برچاو لا مویا خوې بکوشچونیان او کا برازیل کو بیاړې ک اوانی هللا خوې لدی زونه من بروم وایا رنگ واښ نه به او خوا دی زانی لم بین ندا ک او برادر ایرانیان له د جې ایران خبر د کنو لشور شی بارزنی تکیونه زوی رګ له پیش مرګ با کارټیګ در یند زانن جنو کورې فایق معینی لسنګ سره له فایق چوت سلیمانی چایی با فرمانده ارتش پیانجم کوتوا قولیچک و یرمتیلی قولی سندوا دوایی ویستوی لسنور بانوابر و تودیو تو ایران لسر چوار ریانی سیتک چوارتا جا پکیان را گرتوا ک فایقی تده صدق افندی نوی که همون مانی باشده نسی دایده بزینه دلوی که فایق کارمبتوی فایق بلیباس فاقیه و بیچک دلوی من فایق نیم نو ملاقه دره اویش د هرچېک به راقامکوا دوی بیس نو کفایخ او شوباش کوجراونو لا شکنن دراو ته و به ایران راست فایق به شهید کی ملی له کردستانی ایران حساب د کریه بلنده بروین عبدالله الله برایلو پتر شیاوی او ناو بو ملا اورو شریف زاده زور تر احترامن ندب وای سی راجج لبی بچو حساب د گل بلام کم وای تاریخ عادل بو بیو حقي هر کس و پکارو زحمت خویدابه تاهاوین ل لیوجه ماینه و همو من توشی زگیشه زور سخت بوین میشول لکویرش حشری دکردو حجمین من نما بو دکتور محمود وطی اوی کان یکی گند خرابو جیوی تیدای خلکی گند لمندالیه و پیور راهاتون بو اوا سما اوی گرمی چمکه من دینا دمانکولاندو سردمند کردو بلامچاری میشو لندکره قرار در بر بکن بو گندی سوربان که هشت ل لولزه جیبو توا چند روز یک لگوندی قصره ما مو تا من پیدا کردو ریک من خست. تو شوی نیوان قصره و لیو جا جارگ لرگه لبرسان هیزم نما. لامده نو پول سپیندارک راک شام. قشقاله سقباب قراقر لدورم زوری توره کردم. دمانچم لی هلکیشا دو دمانچم پیوانا. هرچند دمتریج دورنبو تازه بتقه و فری. دیار بو زور انگیوی چاکم. راک شامو پاشتاوک خرمو حرام کرد برسی ما دن گوتی او هجاری قلندره دادی بیگنی بیتو نخوش یک مریشگی سوره و کرای و بنان و دامه قرتم لیبری هر دو رگیده شوک دگل دو پیش مرگبومه میوانی شیخی برگرکه شیخی که جحالی زور دلتر و خوش مشرف دفیه نو کی زور خوش شعری صافی که که هیرانی و پښو هر له وجه ګوې اشیکم پیونوسابو ګم ورجان هه تو زوری نراحت کردم. شیخ هر بپله پیواز کی نه سر اگر تا پیستکی سوتا نیرت کی پیواز که کی خست نو کونی وی مو جانشک باش بو او درمنش فیر بم که هاتین بروین دو پیوازم نه با خلم نوگلری ګم ورجان بیتو ګیم نو پردان ډاکټر حسن کی عربی لیبو خویتو راکد وتی چون تو درمن لا دې گوتم دکتر زوری ل سر ما رو زود درمان دکتریان پیواز ل جلفانم داریم بر ل و طاق ل لیوژد جاب کینوا سریکشون دلی بالایان کمکت بی سیاسی و تنفیزی ل زور آو هوای خوش بو دلکن نزیک به 20 گندی تدای پر ل باقات و می به فرنا به همین سورش هر سهلاو نویری ملی تداب مکی چند منی کی جوانه که همو در بروانو در ماز وغورانه همو میوی رزلی ها به هزاران هشوه تری لو برزایانه خودن وینن میوانیک پر شیخ رضای گلانی بوم پیشمرگی کی هبو کریم کچل چشتلی دنه یواری چو موک پر کریم دمو ورو لسر خولا پوتین دریش بوا هاوار دک مردم ای هاوار بمقنی دو پشک با قمکیه و دابو، بنهانگلیشی خربو بو، و تم ماست هیا پیاله که چکول ماسته بو نامسر اگر توز یکم گرم کرد قامکی کریم من گرد بی خینا ماسته و لطاوی خوی دستی ماست رجای نو خول، هور من با درشکیه نگبر تنیا دوی هبو، دوم گرم و فورن کریم من چا کرده با. او درمانی ماست گرم با دشی دو پشک زر جر با حاجی محمدی شیخ رشید کرده بول پشت روش ده کلزینوی دیت موابوتی که که نقله نقلکی خوش چو مالو با صافیه کنم گود او درمان فیر بوم که زور و ماست همیشه ها او انج گوتیان که پی گوتوی و تم افندی شهرستانی صافیه گوتی ها ای پش شیخ راشی تو دمینی ایمان بسر روچ شرستانی دهینی برم پاش ماوی اگ قبر یک هی لولان دلین هرکز برده که چکولا نسر و قبر ها گری و بیخات یرفانی دو پشک پیوی نادا صوفیه که چوب و سر و قسنه دستی با بردو کبر دو دو پشک یک پیوی داوا با دستو سر را جاندن هاد گوتی حاج محمد چم گرده که یواده برم و تماستی گرم کرانی سر روچ ش تنها و لازده که. روش یک لپردی زرده و دمویز بچم دولی بالا یهن. بچاو پیموا بو زور حسانتوانم بگمه. چمدن یکم بدسته بو با پیم ملم لینا گیم قصره. مندو بو بومو گرما بو. استراحت یکم لسر جوگه کرد و خونفیانه کرد و ملم لحورازنا. به هزار درد گیم سر حورازی و سند. لینگم دلرزی وکسر خوشان تلاو تلم بو. آخری گیم سر و جره و کرد. Hoy kaka parisi ghal minha nia garethabrak bidaye niudastek parasi gharam la serbedek la panare dana berdekishim laserdana baniba خُم جا اند ناوگندی و سان مالهموله چال بون چند لایک لسربانی مزگود بون سلامم کردو لسربرک دانشتم وتم توتنو پرو آجرم هیو امشو لسربان رای دبیارم یکی و توی میوانی من بق وتم مالت نزیک ماله کی نشان دم لهورازه که هر تو قیم وتم نام کاکه یکی توی میوانی من بق وتم که مالت و توی لوبردی شمو رجالی که اومد لری توشی یکی تربون وی که میوانی من با وتم کاملا کدومی آمده الان آو بردن دایه وتم باشه دبم میوانی تو کردیان کیشکا چون میوانم دسته نی وتم کاری من با گزوب است ایران نزدیکتره و تو منایه بوم میوانی ناو بردن سیر دکم جنیان هر یکی بیستو متر شالیان لپش دایه عراق شتی و وتم اری اواشین و تیان اما سیدی کلیجین سید عبدالله کلیجین او خوارزی اما کلسابلاگا وتم کره اگر وابی خزمن شوکا برگ هتا و ما لوتی معشالله دلیعدا پیغم اعقله و اما نعزانی امرو بر بوار کم گد پر سیغارم ده بای لسر برده نابون بر دیشی لسر نابو کبانه با بر وان ما که تو چدی و اقلیام های لینگاکلاش درست کن، و تو آه اول تو بای شد به سبای استریخان بد به ما آرشونید تره. لرده گویی که که هم ناو ملاع بوریه. بعد سید علایی کلی جیب و کردم که استع شکر من دوزار پیو، او زورم دل خوش بو چون که سید اولام ک بجی هست بو من دالکی فقیر و حتیو بر بو اتر لو سو بو مخاون خزمو توتنی جغارم هر اوان بو یندینا. لیوژاد دجال سامی ملمان لکاری چپ همنی نیوا رجنمی خبرت هفته یک با عربی و هفته یک با کردی دنسره پاشان کاخ سامی چوام مكتب سیاسی لناو پرداهو من مامو بر پرسی چپ خانو اداره کردنی پیش مرگ کنBUM جارو برد درفت م دینه دچو مو بغداد سری من دالانم داداو یکی کملا لجی خم دادنات تادی مو بسر رابگه جارو بارش من دالا کنم خویان چاو هاوی نیک مدرسه و چانین بو هاتن خانیچ کولم که هول جار لگلاله لجوری مال و درکوتو روانی گوتی آی دایا بخشی بابت چن گوریا یا لوی وابو ام همو جنگل و شاخو داخه هموی بخشی منه کپریک من لچی پشت گلاله کردو کرد مال ماله خومن چند که پریتریش ما لینزیک بون، روژانه کاری چاب خانم دکرد کرد، شوانه درن که تا گلالا دو ساعتک دبو دهات مو مال، اواره یک زود ترچو موا، دو مارم دیتن لیک حالا بون، هاوارم لو جیرانانه کرد کسیان بداد مو نهاتن، ایدی من گلیم لجیرانان کرد، ویتین بخوانه یوتو، هرگوتوی اوطا مار مار هاتون، لوانوا بوا دلیم مال دیکه هاتون، نجوتم کاک قصی قور او ماری دیوا کپی و ددن او انچوتان دجا داخي محمد دبو بیګوت ماری ګوریس هات ګلیکم روانیه او بنگاش برده بردا کدو مارکانی چوبونه بن پیدام نکردن دل معصومم دداوه که هر او ماره بونو رویشتون مترسه چی دینان کتابم دخمن دا ود دموت مرنمه لو دمد ماریک بانی و راستی پر کتابه خوشی ولکلک د خویشار دا جوان بدروزن درچوم شولک پردا چرمن کوجند بو و او باغشه لګلادینا معصوم دی ګوت او ما رخو لمت کردوین تا د نوين جاور او سندخو کمار بشو ناګر اویش استراحت دکا امجر سعید ابو شاملی چاپخانه چی بلای وشته کی زور عجایب کوسون بنی و شوی تاریخ بنو او درستانه پردا به تن یادسمو نترسم، اترسم کاکا دموت... لدرنده نترسم لبنیاده می خراب ترسم که با بم بمکو جو اویش باره در نارو موتوش نابم لیوجه خلقی که زور سادو بست زمانی تدابو جنیک اوی بودینن بناوی میره ورز ببینو میره ببینه اگر اوی دهنو دیدی ده ده میوانی نامو منحیا کنوانکی بسر دموشتاوی داده ده دادو ده دهد دمان ده ده ده ده. ده پرسی میره او بوادکی اویش دیگود آی با قربان او شرمیکم ملایکی ليبو ملانیسک نيسك پيموايا اصلی سعید سعيد بو. أو بيشارة توانی تواني بو دوسيا صلاواتو مولايا صلي لبركاو لا مولودناما دا بجدار بي. سعيدكي نخوين دوار فریان بو بو پلاوي مولودی دخوار دو ملابيا بج بو. وطيان ملاي نيسك چاولكي كي هيا دا دکری نايا وطم ما موستا دا كريعوشتا انتي كي ببينم قطوی کیه نه پر لا کرد هر پروی پر حلقه تر تگیشت لوکه لنا ولوک عینکه کو نه کی لاسکه بنبو راستي قرانی که نه دی نه لملاب بت. وبت ظلم نشکن وتم نشانی کاس مدا زور گنجی کی بقیمتا گه یک بزوری لو نا و دروی بناوی گورمز زور لا اسپنا خوشتره روزانه 20 فلسم ده, ده بکچوله کی مری د چو چاروک گورمز دی نه بانگم کی فاطمو که وره بچو گوارمزه میره گوتی ایر رو فقه ایشه جنی ملانیسک داله جمعان گیا ذکر دکن گناه حال یانقنی منیش خات میره ادی باچی منگاو بزنکاند نردونه دشت گی بدم ذکروا بخون بیانیان میره هر ایوی که شو منده بو دی بردوکانی و لو سر ایوی تازه دینا دموت آخر تو بو هوراز حالدگره ایوی شو بوده بیاوا د یوټ قربان فقې عائشې د لې آويشه نو چته و ناوکانی شکایت لای خدا دکا جاره ميرې شکایت کړت کګر تو لمال ما بي پيش مرګ ته نکي به تعالم نه دني وتم چندي اتوي بره بلان بوچي ته وتی به قربان نیوروني خو مالي او نیوروني شاپسند دمو با پیري مردم دا د نیرما رواندوس وتم هاي بکلتي خيوي له مو عراق د رواندوس به خالص او چاکه بنوبانګه کچي آويش فعلې ته دا بزمي خوشمن لسوربان نزارناو کور سپری بوتانی بو ل کرکوکه وهاتبو من دال کی 16 حفده ساله بو راشته ایاری دگل سگلی ناو دی حل د سور دباوش دگرتن ما چی دکردن خلکی دیشتین پینه د فروشتین د انګود گلاودبین هر چی دگل نزارم دکرد بیا بو واکه که خوشی زیرکی نظر په عرض وب نه ابو همیشه تاریفیا کرد نظر پرسم دو بزن یکیان روی داروشالات و یکیان روی داروش آوایه لسر باقه یک دلوارین او چون ده بی؟ قدر یک ماتمهوتی بزن نه بی اصب ده بی که پارو او با پاش قونی ده, ده گوتم شتیکی کپیشو بیستو تاو زانیو تو اتو او ده زانی ملی لسو نه که بزیرکی خوی حلی کردوا نزار کردی نه زانیو کلاسی ششی خوینده بو هر زووتی اجاز این بچو بلامزوه روه، چو با هر لدوروه بانجی کرد با بابا بابا، لغز یکم بزیره کی خوم حل کرد. که با یرا بوا باو کی جوه پیدا بو. او حتیو، او چیت کردوا؟ ابرود بردوم. حالی کرده بو که حسانه، نزار شونه اتهوه، بیانی یعنی خوم لیه تو کرد که بود روی کردوا و تی؟ سگل بو, بو هد، بلایتاکم لدم و چای خومده، گوتم من نزار اول تانم بلام قبول یان نکرد و نمیره بشو بیاموا جانبه لبیر بشه کلاید لاید باستگ لیدره لشوده هرگیز نویرن نزیک پیاو بکوناوا دقال نزار برده دروشتین توشی پیاویگ بوین کوپلا ترشاتی که لسر برده بو نظارو تی ما مستعو کابره یا ترشاتکی بو مالی خویاتی بو جیرانان یان دی فروشه و تم یعنی چوارمشی ماوا یا, چوار ما یا قبری بابی رادک شویگ لجور درکوتو بفری دی بو. هاتو او تی شتیکی زور سیرا بفر لعرز دایو استیرج لعاسمان دیارن. تختی نوستنم لناو ناو دا نزی کوره بو. قراغی لو لکوره لسر بان دلوپه اکرد. نزارم نارد هنده گلی تیپستیوه بي. دلوپه بستا. لپر باوشک بفرو آون بسر دا كوت. وتم نزار او توچید کردوه. وتي ما مستدیتم بفر لخول پاکترا بفرم تیپستاوت. شرکت چند صوفی که کی دیالامبون نظر بسی سجی کی لپرسین کنای بینم بقیان کشتمن آی بخوای رحمتی زور سجی